اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و علیه دائمه تعالی اجمعین اللهم فرمه جمعین المشترین مرحبا ارسود که در امر دوم مرحوم شیخ راجعه به کفاره غیبت بحث کردن حالا من شک کردم که تو کجا رسید در؟ بحثانو من احتیاط یک از بحث روزه گذاشته می کنید یک روایتی که که ایشون رو آوردن لیکن رو از سکونی ابی عبدالله علیه السلام خب نوشتن هواچی هم نوشتن که اینشون اشتباه کردم از روشه سکونی نیست هفت سبن عمر این روایت از هفت بن عمره نمیدونم توضیح دهنم روز چارشن بیانم به حسب ظاهر الان هفت ثقن عمر رو نمیشنسی نمیشن تشریز بدون حالا غیر از بساقت و اینها البته به طور طبیعی یکی از امور طبیعی در اصطلاحات به اصطلاحات اون زمان حتی الان هم در دنیا اهل سنت شون که عمر نمیگذار در دنیا اهل سنت عمر و ابو حفظ میگن اصطلاحشون اینه خود عمر هم ابو حفظه بله قرص به این که احتمالا اگر ما از این که یعنی مخواب من قواعد آمه رو خدمت رو ارزو کنم. از این که مثلا تو را میه حرف سبن عمر اکتفاق به نام پدر میکنه احتمالا خود این شخص به همین عنوان مشهور بوده یعنی مثلا آمری که ما, ما چند تا توی حرف این تو رجال نبار کنیم چند تا عمر داری که بعضیشان توصیف شده مثل عمر دعوان کلبی این مثل این کلبی همس هم ابن عمر که تا پدر میرسونن اشاره به این غالبا که مثلا پدر شخصیتیه تا بگن همس ابن عمر شناخته میشه عرض کردیم این یک است، اصولا که بر اثر کسات استعمال شماید دیگری که اخیران اشاره کردیم یک اسمی بیان عنوان منصرف میشه مثل مثل شما میگید آی خویی اینطور پرم مراد از آی خویی هرکسی که از خویی باش مراد شخص معایه نیست مثلا قدسال الله نفسه علایه حاله این عمرها رو یه تویشی نگاه کردم رو باتمان مکننا به ابو حفظ هستن احتمال اینکه این, این بچهی که از اون باشه هست شواهدی هست و هر حال اما باز هم نشد یعنی با یه مراجعه کی کردیم یه چیزی که افرینان پیدا کنیم که این حفظ نعمر کیه نتونستیم به این راهی برسیم و البته موم شیخ اضافی برای اینکه ساعت رو هم خراب کردن م هم فرنده کفارت اختیاب و تفره ل من اختته او کل ما ذکرته بود. م روورد همیز که اینجا هااشی اوعبده آل سو آل و ال نبی ما کفارت اختیاب بالا تصففر و الله ل او کل ما ذکر او مع اینه. البته در خود کتاب وسا... در خود کتاب نکاسه بعضی از نسخ کما... کما هست اما احتمالا احتمالا کلما باشه راجع مطمئن صحبت رو کن اطلا خدمتون که ما اخیران بحثای راجع به رجال و تشخیصین ها بود و ارز کردیم که کتاب شیخ کتاب نجاشی و دست الله نفسه برای فهم روایات مشکل داره چون ایک کتاب فهرستی است و روایات به درد فهرستی به درد روایتی میکنم لیکن نمیدونم گفتم وقت مگر یک شواهدی در دست داشته باشیم که این سند در حقیقت یک نوع اجازه است طریق به کتاب. این میتونیم پیدا کنیم در مواردی مثلا در همین جا ایشون اسم نورده راوی قبل از هفت ابن عمر راویش هارون ابن جهنه هارون ابن جهنه هارون کفیان او اعتماد کتابی هم داشته شواهدن نشون میده کتاب بد نبوده اون هم نجاشی هم شیخ هر دو کتاب رو که نقل کرده امولا به قوم آمده از واقع قومی هاست و در فریم شیخ را در طرف نجاشی کتاب توسط احمد برگه انعبیه انها همون جه کتاب اینجوری رسیده یعنی خود بهدادی ها با این که این شخص کوفیه نسخه ای که دستشون رسیده همین نسخه ای که به قوم رفته از کرده به لحاظه تاریخی محمد ابن خالد برقی ایشون در کوفه بوده آمده قوم و آثار کوفی ها رو به قوم آمده تاریخیش درسته ایچ مشکل نداره از تاریخی مشکل نداره و از عبارت نجاشی هم معنی میشه تا حدی کتاب قابل قبول بوده کتاب حارون ابن جهر. و در این بباید در کتاب کافی آمده کلینی در کتاب کلینی به عین همین این یعنی احمد البرقی این ابی این هاونون جه تقریف فرمودید؟ لذا به ذهن خود من یک وسوق اطمینان اتمینات میشه که این نسخه و مرحوم برقی پدر محمد ابن خالد از کوفه به قم آورده. و هر حال چون در اجازات آمده و نجاشی هم تستیخ کرده ظاهرا این نسخه ثابت باشه احتمال خیلی قوی داره با مراجعه به شواهد خود این کتاب در قوم در اخیار مثل کلینی بوده یعنی تاریخ روایت اوشنه تاریخ روایت کتاب هارون ابن جمعه این هارون جمعه و یک فامیلی هم دارن چند تا فامیل دارن اینها جدشون به اصطلاح از موالی امهانی بوده امهانی تنها دختر حضرت ابو طالب راست، طالب که 4 پسر داشتن یه دخترم دارم دارن امهانی که خیلی هم زن شجاعیه، خیلی زن مخصوصه به حال. بر میگردن به عنوان ولا به امهانی، خواهر امیرالمومنین سلام الله علیه. من خاندان یعنی من به واسه وجالی بشن. کردم تا اونجایی که من میدونم در میان علمای ما اولین بار مرحوم آیه بحر العلوم تا اونجایی که من خبر بود. بحث رجالو خاندان ها برده مثلا خاندان هلبی خاندان خلا آل زراره، آل کذا، آل هرین ایشون خاندان ها برده و سعی کرده که افرادی که از اون قصره اسم داره و در غیر از این کتابیشون در میان این کتب رجالی که من دیدم البته از کردن باز اون که من دیدم شای جایی دیگرم باشه مرموم های ابتهی استاد ما مرموم در این داری مقال کار خوبیه این کار یه کار لطیفیه حالا همه جا کامل نیست بحث دیگریه مثلا یه راوی که داره ایشون بعض شروع کردن فرض کن مثلا میسن تمار بمباب مثلا به خاطر میسن تا زمان خودش و بعدش به کسب مینه بعدها این اسم به رحب میسن گفت هر جا میسن هست میسن الا تمار ایشون میسن میسن تمار اون میسن بهرانی صابه چه نوعی میسن بکنی اسماء شد خب ما از خاندان میسن و تمار عده‌ای داریم این هرکجی آی هم تو همین تزویق مقال یکی از کارهای دیگه ایشان اینه ای که مثلا یه راوی هست مثلا برادرش پدرش پدر برادر مثلا پسر برادرش پسر خواهرش هی اینا هم سعی کرده جمع بکنه بعضی اسماء اشتباهه این خیلی مهمه بعضی اسماء توی رجال شیخ واضحه که با اون قرائن که با این شخص مثل فلان باشه از این راه این راه خوبیه یعنی یک راهی است که فرض کنید مثلا با مثال عرض میکنم کنم قاموس المقال مثلا نداره منبر مثلا آیه خوبی در معجم نداره آیه خوبی تو این راه حسن کلا نرفته ذکرن به عنوان خاندان مرحوم روم داره که کار خوبی است یه مقدارم هم ذکر کرده که این خاندان نو که در خصوص مفردات بیشتر تصبوح مرحوم‌های عتقی بیشتر بود خیلی زحمت کشیدن ایشون تو تهذیب مقال این راه رو را رفتن چون من اصلام کتب رجالی هر کدام بعضیشون نکات خاص خودشون داره ما این نکات رو توضیح میدیم که اگر خواستیم بعد مثلا توسعهش بدین یا نکته رو بدین بدین نکته چیه این نکته که یک رابطه ایجاد به بین خیلی از روابط که این برادرونه این پسر برادرونه این عمویونه اون اینا نوهیونه اما در خود نجاشی هم هست تا تو تضیاد نیست کمه پس اونطوری که تو ذهن من 20 مورد مثلا. که این نوش اینه برادرشونه زیاد نیست تو نجاشی اما این راه خوبیه همه کتور جان ما هم ندارن این قسمت های من نگاه کردم به نظرم آقای افتای هم نداره از این موارد خیلی خوب وارد شده خیلی قشنگ وارد شده تو همه اسمایل جوفی البته استنتاجات ها در قسمت هایش نیست تو اسماعیل جوفی اما توی منحیصال مجموعش خیلی سعی کردن از خاندان جعفی رو در بیارن از جاهای دیگه و اسمایی که اشتباه شده تصحیح شده تحریف شده این ها... اینا نکته خوبی است حالا شاید مثلا خیلی نکته نکته رجالی نمیشنا نکته ترجمه‌ای باشه جزء تراجم باشه اما نکته خوبی است در مجموعه میراث های حدیثی ما موثره انصافا بی تاثیر نیست کیف ماکان این خاندان یعنی که بر که به اون به جهد ابن فلان جهنمو جهاد ابن ابي جعده اسمي داره من تو ذهنم که از به اصطلاح مولای امهانی بود خواهر امير المؤمنين یکیش همین هاون جهمه که توصیف شده واقعا یکی راهی است که تقریبا میشه گفت مثلا اخباری ها که از قرن دهم ده روی صحنه ظهور پیدا کردن ما این توضیح دادیم صابرن ارث کردیم راهی هست من راهشو میگه مال قبول بشه هاشی گفت که تا چه در نظر افتاد سالح و طالح مطالت هیچ نموده اما به هر حال اون بحثی بود اینجوری یه ای بحثی رو ما مطرح کردیم که اگر دقت بفرمایید، که اگر مثلا مثل این مورد ما که روایتی داریم مال هفت سن عمر و هفت سن عمر رو پیدا نکردیم نه اینکه مجهوب زریفه پیدا نکردیم از اون طرف نجاشی و شیخ کتابی رو به هارون ابن جه نسبت دادن و از طرف دیگه سندی که برای هارون جه گفتن به اینه به همین که الان پیش ماست به اینه که الان در کتاب کافی این روایت رو به همون سند به اینه از طریق هارون جه و کتاب هارون جه با این سند از کوفه به قوم آمده خوب دقت بکنه نتیجه حالا این محفوظ ها مکلوب بگیم از اون طرف هم خوب دقت بکنیم نجاشی میگه کوفی اون سره این عبارت ها مشعر به این باشه که وقتی نجاشی میگه کوفی اون سره یعنی و میگه لهو کتابون الان از وثاقت او ما نمیخوایم مفردات ربطش اثبات بکنیم از وثاقتی که مرحوم کلینی میگه میخوایم کتاب رو اثبات بکنیم چون این وثاقتی که کلینی میگه توش کهش هم باشه ما می‌خویم پیش زن طلبو بودیم می‌خویم پشت سرش نماز بخونیم می‌خویم بغینه قرارش بدیم اون چه که ما الان از هارون جه می‌خوایم کتاب بشه چیزی که اتقرار ندیدیم بگیم وقتی ایشون میگه کوفی اون انسره و راه کتاب روشنه و الان اون موجوده و میگه ولهو کتابون کوفی اون سغتون ولهو کتاب یعنی این کتاب قابل اعتماده اون شواهد هم مشهور داد که این روایت از اون کتابه پس این روایت قابل اعتماد ولو هفت نعمه را نشانسیم از کردم این, این راهی بوده یعنی به این تقریب نه راهی بوده که هدف اخباری ها بوده ایتنا روشن شد چون از زمان علامه قدم های اصحاب کی این بردن نقلم کردن از زمان علامه های روز ضعیفه چون هفت نعمه توصیق من شده. اخباری ها راههایی رو برن برای اینکه که بگن نهرواز ما قبول بکنیم اون مضمون کلام اخباری ها به نهو تقریب شافی کافی شدول که خدمتون ارز کرده که این البته مقدمات داره باید مثلا اسم کتاب برده شده باشه در حد راوی نباشه اسم کتاب برده شده باشه سراحتا مؤلف کتاب توصیف شده. شده باشه البته اگر چون نجاشی جاهایی داره مثلا میگه کوفیون سقتون مسکونون الاروایته این مسکونون الاروایته گفتن این اثبات میکنه که کتابش قابل اعتماده. من از هم کوفیون این اثبات نمیکنه اما مسکون الاراته چرا او رو اثبات میکنه که نجاشی زیادی بیاره اینجا نجاشی زیادی نگاه فقط توصیلش شده از راهی که گفته شده برای اینکه که اولا یه راه همین که من اعز کردتون چون داده به هفت سقن عمر این معلومی میشه عمر نامی بوده در کوفه جز اصحاب ما که معروف بوده اکتفا به اسم اون شده حالا از زبانتان امتایم تشخیص بدیم چون از کتاب حارون جهمه و کتاب حارون جهم طریقش واضحه کتاب حارون جهم به قم رفته و از طریق قمی ها به ما رسد و به بغدادی ها رسیده این در کتاب کلینی آمده که ایشون هم میراس و قمیه ایناره که با هم که جمع بکنیم این مطلب نشون میده که روایت قابل اعتماده ولکه خب به برها به هر حال مشکل داره. این راجع به سند روایت و مستر روایت و اما راجع به مطالبی که در مضمون روایت هست خیلی از اون که الان شیخ قدس الله نفسه فرموده ارز کرد روایت مطلب روایت در کافیه اونجا نقره کم آزه کرده کل ما کلما اصحباشه که در متن کتاب آمده کلما این البته متعرض نشد مرحوم شیخ اینجا این یه بحثیز در کتب کلامی آمده در کتب کلامی در زیر بحث توبه در بحث زیر بحث توبه که است بین پدر و پسر ابو علی جب جب و پسر ابو ب... حاشم و این دوتا اختلاف دارن چون در باب حقیقت توبه ازبنس بر ترک گناه اختلاف اینه که یک بار ازم کافیه یا نه این همین جور باید تکرار بکنه یا با قول آن فقاهای ما استدامه حکمیه کافیه همین که ازم کرد بر ترک گناه بعد دیگه نیت نکه همین کافیه استدامه یا نه هر وقت یاد گناه آمد باید ازم بکنه دقت میکنه از کلمه بحث توبه تو مباحث کلامی آمده و دیدگاه کلامی هم مطرح شده بین خود معتزله تو این مسئله بحثه بین دو از عرق. پدر بزرغ در معتزله این نزاع در کتب اهل سنت آمده که آیا این عزم باید مکرر بشه یا نه همون عزم اولی و خلافش هم کافیه از این روایت اگر این راوی سندش درست باشه این معلوم میشه که اون عزم باید مکرر بشه یعنی عربت اینجا آزمیز استعفار له، هست. این استعفار له واد مکررش. لکن اصحاب مرhum شیر بیم فتوا توجه نکردن مرhum شیر. این لازمی این رواه این از که فقط یک بار استعفار هم کافی نیست، اینکه میگه الله مخفر له کافی نیست. کل ما ذکر هر وقت یادش میاد که من غیبتی از فلان کردم میگه الله مخفر له. شبیه استعواره آزم، شبیه اون استعواره آزم میکرد. در اونجا در بحث توبه در کتب کلامی آمده شبیه اون اینجا در حدیث آمده به هر حال انصاف قضیه انصافش روشنی تمام نداره سنت برا با این رایج رفتیم با تمام این معمولات روشن بودنش خیلی واضح نیست خصوصا اگر بنا به این بشه که شواهد کافی نباشه که فتوا هم بر بوده خیلی روشن نمیکنه لذا مرموم شیخ داره بلو سح حسن دوهو امکنه تخصیص و اطلاقات متقدمه به اطلاقات و رو تخصیص بزنه استغفار و این یک نوع توجیه کارهای شیخ جمع بکنه بگیم دوارد که میگه استهلال بر از اون طرف حلیت بطرم با این دوارد که میگه استغفار بگیم استغفار که از مصادیق استهلاله فایکونه الاستقبال تریک نیستن برای این در جان هلیات ها نه اون اساسِ برایه یعنی برایت اون مخاطب فرد اون ما رو بریق بکنه هلیت بده، مرادش دش هلیات اینو شیخ من کرر ارز کردم نمیدم حالا این چیه شیخ تو خیلی از افرادش خودش تو مکسر یه متن محره میکنه، بگرند میکنه بعد من جور دو ارد دو داره نمیدم حالا این یک نحوی بوده که علمای ما داشتن خیلی تو اصول مخصوصن خیلی از این رد و اخذ و داوری کردن خیلی این علمی نیست یعنی خیلی مشکله اولا تو لسان لسان حکومت چه لسان شارحیتی داره کفاره الاستغفر ان ما كتبتو این چه لسان شارحی داره به مسئله استغلال استغفار له از استغلاله دو مفهومه این که ایشون بگه که این رو ما توسعه بدیم استحلال و توسعه بدیم شامل استفا هم بش استف ل. انصافاً علمی می خود ایش تعجمه مثلا چرا اووردن احتمال رو. من همیشه کردم انسان بعضی احتمال تا شب تو مطالعه ممکن بودم لازم نیست که بعد تو درسم هم بعد درس گفتم تو کتاب هم بیمشه بعدا چاپ بکنیم خیلی او قسم از تبااس خورده باشه برای احتمال رو چاپ بکن. این باید نقطته فنی داشته باشه. هیچی نقطه فنی نداره و من احتمال عدم ایزم و لظام خودشون برگشت لن کنر استغفار کفارتن راسته خب که ای داره فلعلهو کفارتون لذن من حیث و کونی هی حب دل الله تعالی و هر حال حالا ما بخوایم خیلی به قول اموزه طرف اخباری رو بگیم حالا لعلهو چن بذاریم کنار من حیثیش هم بذاریم کنار علایه این کفارت و غیبه ل... انتستخفر لمن, لمن اقتبتهو قطعا این با مسئله استحلال ربطی نداره نزیر کفاره قتل خطر علتی لا قاتل. جب برایت القاتل آباز برگشت بینید ظهور سیاق فل برایه برای هلیه ما که ب... سیاق هم نفهمیم اگر لفظی چیز در نهایه سیاق چون از کنید سیاق دلالت حالیه لفظی نیست به غیر لفظی نگه سیاق اون که دیگه بدتر وقت مشکل معروشه ایشون این مطلب رو یعنی است که در قرن مثلا دهم هم شهید سانی اوزن قاله که ریبه ایشون در قرن دهم بودن بعد ذکر نبه بین نبه بین اخیره المتعارضه و یوم کن جمع و بینه هما یعنی بازم یوم کن یوم کن درست نمی کنه ما ارز کردیم این همین توی ما بین بحث ها سالانم کردیم این مسئله جمعه بین حدیث این, این ریشه داره در فکر اسلامی در تفکر اسلامی ان فرصت دیگه بشه عرض میکنیم هم در شیعه بوده هم در غیر شیعه بوده هم این تفکر این بوده که ما بییم روایت جمع می‌کنیم اعص یه تفکر دیگه در مقابلش رو به اصطلاح روایت اسقام بحث اسقاط کیفیت بین دو سال روایت متعارض این دو سال روایت متعارضی که با شواهد می‌خوره قبول نمی‌کنه می‌خونه اسقاطش می‌کنه الجمع و مهما امکن دلیلی برش نیست اینشالا عرض خواهم کرد مسئله جمع از شهر ما الان در فکر خودمون الان در اصول خودمون شخصی رو که می مسئله که جمع داره اولینش مرحوم شیخ توصیه. الان قبل از نمیدونه قبل از ایشان مرحوم شیخ کولینیز که قاله مسئله که تخییره قبل از ایشان مسئله که مرحوم یونسیم یه قالب اصخاط به اصطلاح تره بسن. از کنید مساله که اصحاب ما دارن اجمالا چهار تاست تره هست تخییر هست جمع هست ترجیح همه هست این چهار تا مسئله که همشت به بطور کلی مسلح تخییر مسلح ترجیح بیشتر از زمان علامه است. یعنی مسلح ترجیح اصولا از وقتی بنشی ارا که حجیه تعبدی خبر جا افتاد کرد از قرن هشتم به بعد تا قبل از قرن هشتون تقریبا مسلک جنگ رو میشه گفت بیشتر جا افتاده بود که شیخ گفته مسلک تر که مسلک یونسه خیلی جا نیفتاده بود مسلک تخییر که مسلک اگر حالا عبارت مرحوم کلینی خالی از امهام نیست اگر مراده ایشان تخیر رو شد مراجعی به این مطالب صحبت این انصافا مسلک جمع حالا غیر از اینکه حالا انشاءالله دیگه شیخ انصاری و دیگران دارن انصافاً مسلک درست درمونی به نظر نمی رسه این مسلک جمع من همیشه عرض کردم مسلک جمع مشکل علمی ما رو حل میکنه نه ظهور نه راه کشف احکام شرعی ما گیر کردیم خدا رو بالاتر چهار بکنیم مسلک جمع یاد اینو حلش میکنه که مشکل ما رو برمیداره ما نباید توی بحث های علمی مشکل خودمونو مطرح کنیم مثلا که مشکل خودمون دره باید راهی داشته باشیم برای وصول به احکام شرع مقدس راهی داشته باشیم برای شریعت مقدس عمده اینه مثلا ایشون داره که یومکنل جنبینه خب یومکن چه ارزش علمی داره ما از کردیم همیشه معیار رو فراموش نکنیم هر نحو جمعی یا تخریریشو خواستید بدین که دو تا دلیل رو قبول بکنید غیر از طرح که یکی به قبول میکنید که طرح میکنید هر یا هر دور طرح کنیم غیر از مسلکه تر شما هر جور که بخوین بینوزید جنب بکنید به یومچه نمیشه باید به حد ظهور برسه شما عرض کردیم معیار در از زهوره حالا فرض مثلا دو تا داریم که ظاهر در یک معنی هستن به اون قبول بکنیم این نمیتونیم معناشی نیست که یک نحوی جمع بکنیم بگیم برا قبول کردیم. جنب باید به برسه که ظهور متعقل بشه اگر به حدی نرسید که ظهور منعقد چه فایده داره ما مشکل خودمون حل کردیم ما با این کار ما در تهاوز بودیم، گیر بودیم، گیر خودمون برداشتیم این ارزش علمی نداره و لذا یوم کنال جنب من میخوام به طور کلی راه رو ارزی بخونم این راه هایی بوده که بعد از شیخ در میان اولوای ما آمده و یوم کن و یوم کن الیغا اینا هیچکدومش فایده ارزش علمی نداره تا نرسه به حد استظهار و ظهور هیچ فایده نداره. اولا باید ثابت بشه خود همین رباید حفظ ابن عمر مثلا بین اصحاب تلقیه به قبول شده اون رباید دیگه هم تلقیه به قبول شده وقت چه کارش بکنیم مثلا ایشون فهمدن که بیایید این کار بکنیم کنیم استغفار لح الا من لم تبلغیبت و المختار فیمبقی له الاختصار الاد دعا والا استغفار استخبار لحلهش افتاده لعن فی محالتی اصارتن لفتنه از کم محاله نیستهلال در بحث سر و جنبن لذغانه و فی حکم من لم تبلغ من لم یقدر الوصول اله لموتن اقیبته قیبته و هم رو المحاله الان که اون ده این هم یک راهی که مرور ببینید ما به جدیم بحثا میگم قاله فلان اصلا بگیم چه نقطهی داری از کفاره تن قید اختیار ان تصرف له مدت تر که اونجوری که عمله می‌کنه. ببین شما میگید ما دیدیم دو سرا وقت معارزه، روایت استغلال با روایت استغفار الله. خب اگه معارض جمعش کنیم به عصب به او چه مشکل داره؟ بگین یار استغفار الله باشه استغلام. چه نکته‌ای داره شما حمل طولی بکنیم که بگی اگر بلغت کو و یوم که در اینجا استهلال اگر لم تبلغه ولا یوم که نوبت استغفار ل. چه نکته است از کجا در رسو یرا ده یعنی این من می نکات رو ازم و متاسفانه حالا نوشته شده دیگه شاید ممکنه ما هم بنویسیم لكن واقعا باید یه فکر اساسی بشه که هر احتمالی رو یا ننویسیم یا همون نکته فنی جواب دیم. یک کلمه توی روایت که اطلاق داره از اطلاق شو در شد ایشون لزوما همین شیخ میگه انسح النبوی والاخیر سنداً فلا حالا با شیخ چرا به جعری طریقا الالبراعه برای یعنی حلیت مطلقاً فی مقابل الاستبراء استبراء در اینجا نه استحلال استبراء دیگه مراد نیست طریقا الالبراعه مطلقاً در مقابل استبراه یعنی دو راه استحلاق تو برو طلب حلیت بکن حلیت اون طرف اگر تو استغفار لح کردی حلیت اون حالا ایشون مرموشی میکنی انصح هد نببی فلا مانه اینم عمل نشد که کجا تو رو این مطلب خوابیده کجا تو رو باید خوابیده که این استغفار تو به منظره اونه و الله تعین ترهوه و, و رجوع و اصل؟ یعنی مراد ایشان از اصل اس، اصالت البراعه عن وجوب الاستغفار لا مرادش از اصل اینه شک میکنیم آیا استغفار لح واجب هست یا نه اصالت البراعه ان وجوب الاستغفار لا که این استغفار لح واجب نیست و اطلاق الاخبار المتقدمه مراد از اطلاق ایشان یعنی ذکر نشده توش اطلاق مراد ایشونه و و تعذر الاستبراء الاس... الاس... استبراء نه استهلال او وجود ول مفصلی فی لا وجود و وجود این مطلب مطلبش درسته مطلب من اخر نه ارسل بعض من قاره و اسرنا انساد علی السلام اینکه این اقتبته فبلغ المختاب فستحلمه. و مه لم یلوه فستخر الله له اصلا که مطلب رویشون نمیشه بلغ بعض و من قاره و اسرشون نظرش به کتاب جامع اسدات مفهوم نравیه یا مثلا پسرشون شاید توی میراج سعاده مورده باشه نمیدونم. در جامع و سعادات هست این مطلب لیکن جامعه سعادات از مصباح و شریعه گرفته تو بهار همه هست شاید مرحومشه دقت نفرمونده نویستن نوشتن صدقی ها کنی مرسله مرحوم نراغیه نه با مرحوم نراغی مرسله هست این روایت روایت مصباح و شریعه است رای چه مصباح و شریعه بو علماء رو یه صحبتی کردیم که مقتالی رو به بید نسبت داده شده از طریق ما هم نیست. همس کردیم از قرن اواخر قرن چهارم و اوال پنجم مجموعه از یک روایاتی روایت خاصی است ایش مشهوری هستی دیگه من عرض اینها به امام صادر نسبت داده شده ما هم راهی نداریم در مصادر ما نیست کلا. در از یه و تو نیست تو مصادر در 3 و چهار ما شاید پیدا بشه. اما به طور کلی راه نداریم. و بلکه شواهد بر عدمش هم داریم که ارز کردم اون روز که ای کاش این مثلا این یکیش از است که انسان شاید دونه از تحقیق تو اینها یک نتایجی پی ببره ما الان که میتونیم واقعا مشکله این مطلبی که در اینجا در کتاب مثبه و شرگه نصفت داده به امام صادق سرات الله سلامه علیه این به اینه تو کتاب و کلامی رأی معتزله است همین مطلب به اینه این رأی معتزله است و فی ما بعداً مرحوم خاجنصی توی تجدید آورده علامه تغییر کرده علامه انظر فقیر رد بشه نگرد تغییر بی معنا تو کشف المراد علامه در شهر تجرید این مطلب رو تغییر کرده اگر کردم قبل از شهر تجدید قبل زمانی نگاه کن توی جلد بیست شهر نجوا بلاغه چون من در کتاب مواقفونه یکی دوست کتاب میاتن پیدا نکنم از معتزله ابن اول هدی از اصحاب اونها که باشه ایشون استدلال میکنه که اگر غیبت کردن شخصی رو استهلال مطلقا لازم نیست استهلال مطلق یعنی که ایشون نتیجه کلامش اینه چون میگه استهلال یا به معنای این است که در ذمه شما چیزی آمده به قول معروف شراعت بکنه میگه اگر غیبت موجب این کار بشه باد اش یک پولی باد مثل مثلا مدیون کسی هستی باد پولی باشه و خود در قید پول نیست پس نمیتون بگیم ذمه است این شغل ذمه رو قائل بشه اشتغال ذمه رو نمیشه قائل بشه لذا ممکن است استهلال به معنای اعتذار باشه یا یعنی این استهلال یا به معنای اسقاط ذمه است یا به معنای اعتذار اگر به معنای اسقاط ذمه باشه باید بگیم قیبت موجب ثبوت یک هرچی ثبوت یک مالی ثبوت یک وجهی در ذمه ترخ میشه و این کسی قائل نیست دقیق بکنید اونا رو بحث روایی نرفتن اونا رو رفتن رو بحث استهلال عقلی پس این استهلال اگر باشه باید اعتذار باشه این درسته پس دقت در قطعه نکته فنی چیه؟ استهلال منو شکل انسانیم توجه رو انسانی پس استهلال در باب قیبت نه به معنای اسقاط ذنبه است و براحت ذنبه چون قیبت چیزی نیست که در ذنبه چیزی بیاره استحلاق قاعدتر در اینجا معنای اعتزاره اگر به معنای اعتظار بود اگر او فهمیده من قیبت کردم اعتزار خوبه اما اگر نفهمیده من قیبت کردم برم برم آمان قیبت شما امتونه اوز بکنه بدتر میشه او خبر در داشته خبر پیدا بکنه کار بیشتر مشکل میشه ببینید مطلب رو, رو روی استدلال عقلی دارم متزده همین مبنا رو مرحوم خاجه در تجرید آورده و تو علی ما بلوغ حال البته این عبارات ابن حبیبی در صفحه 60 جلد بیست همین چاپ معروف نگاه بکنید یه 4 صد نوشته مفصل تر خود علامه هم این توضیح نداده علامه هم مقدار ظاهر عبارات خارج توضیح داده این تقسیمی رو که من عرض کردم که موجب ارج نمی‌شه یا نمیشه این در کتاب ابن حبیبی اومده که از معتظر نقل پس در حقیقت زرافت کار دقت کرده اونا قبول میکنن که در غیبت یک نوع استهلالی هست لیکن این استحلال هم جدیشه برایت و استبراع نیست برایت زمه و اسخات زمه نیست چون اگر اسخات ذمه باده باید باید هرچی باشی باید هرچی نیست پولی نیست پس این استحلال حقیقتش اعتذاره چون حقیقتش اعتذاره اعتذار در جایی تصور میشه که این غیبت اون شخص اصیله اگر غیبت اون شخص ناصیله چه اعتذار بکنم بنا داره اعتذار کنم شن شد پس این یک مطلعی بوده که حسب قاعده بدونی که استناد به روایت میکنه هیچ روایت رو ذکر نکردم از علامه امینی به رحمت الله در شهر مثلا شده علامه اعتمادش این بوده که اگر کلامی بنویسه دیدگاه کلامی مثلا بکنه هر کتاب بنویسه دیدگاه فقهی بکنه. شاید نظرش این بوده یه وقت دیگم ارز کردیم پسر ایشون فخر المحققین این نقل کرده در این ایزاهالفوای جلده اول همون سطحات مثلا چار و پنجون تا هم پنج خیلی لطیفه من یکی بار دیگم چون چند ماه قبل نماشد یک سال قبل گاهیر من مکرم نه میکنم برای عظمت اندامه فخر المحققین ادعا داره که اختلافات فتواه پدرم در کتبش به خاطر اختلاف سبک کتابه مثلا قواعد احکام سعی کرده یک دور فقه رو طبق قاعده بگه مثلا طبق قاعده اگر بگی اونجا حکمش اینه اما فارسی منتهل مطلب یه یک دوره فقه تلقی روایاته یعنی اون زاویه دید پرم این پسر انشاء ادعا میکنه اگر راست باشه من که فکر میکنم خیلی خیلی واقعا مشکله چون یک دور فقه رو من از بعدم خط از دو زاویه سه زاویه بنویسی خیلی مشکل واقعا خیلی اوجوبه گاد باشه چه این انسان حالا احتمال داره در اینجا معالم این کاری کردن کتب فریشون در اینجا نگاه نکنم در بحث غیبت مثلا داره یا نداره اما در بحث کلامی همین مبنای خاجرشون گرفته در مبنای در همین کشول مرادش نقد نمیکنه، نقادی نمیکنه. شرح پوشیه وای خدا نشانی می‌کنم چون من داشتم که از من گرفته نبود داشتم مراجعه به شرح پوشی از شروح غیر از فعلا پیدا نکردم مواقفی نم که نداشتن کلا این بحث رو معتزله دارن اینو نداشتن اشعار نذاشتن الان که احتمالا این تقریبه که بخ این معلوم میشه که این مطلب اساسا در مکتب عقلی گرایی مطرح شده همون نکته که شما عرض کردم حالا در قم پنجم یا اواخر چهارم چطور در یک کتابی همین مطلبی رو که معتزله گفتن به امام صادق نسبت دادن کوشش رو چی محاوره بگم مشکل کار اینه یک قسمت کار رو ما میتونیم حل بکنیم فرض کنید معتزله مطلبی گفته باشن در کتب کلامی بعد در کتب کلامی شیعه اومده باشه یعنی این قابل حل مشکل نداره چون تمایلات شیعه مثلا مکتب بغداد با کلام معتزله است اصلا یه توضیحی دادیم معظم بزرگان به اصطلاح معتزله بغداد یعنی افکار معتزله بغداد با م... با زیدیه که در این سران سالهای قرن پنجاب و شیش هم در بغداد زیادن دیگه مثل حال نبدن که همه در یمن باشن در و اینها تفکراتشون معتذریست خیلی نزدیک به معتذر اگه نگیم اینه معتذرن زیدیه بغداد که یکیشون استاد خود ابن نویل حدید ابو جعفر نقید این آل استاد ابو جعفر ایشون زیدیه اما تفکر تماما تفکر معتذریست اگر معتظله مطلبی بگن تو کتاب های فرض مثلا شیخ توسی بیاد یا شیخ مفید بیاد یا بعدها مثل کتاب خارج نصیر بیاد این رو ما خیلی مشکل نمیدونیم اصلا بگیم تأثیر اعتزاد اما اینکه چطور این مطلبی رو که اصطلاح معتظله است و زیر بنای علمی مخصوصی داره و تفکر و نفسه این اون رو به امام ساده نسبت داریم خیلی مشکله روستنشون کار کجا مشکل داره؟ مشکل میشه. یعنی این مطلبی که ایشون در اینجا در مصباح شریع آمده به عینه با حذف یک مقدمه همون کلام اشاعره است معتزله است من یه بار دیگه مطلب رو بخونم و حذف مقدمش رو بگم انک انخترت قبل الغ مختار دقت کنید فاستهل منه میه مرحوم شیخ هم توضیح داده اگر شما به تجوید و شرایط تجوید در مراجعه اونجا هم توضیح نه این توضیح رو ما از برکت ابن عبدالحدیث جدا کردیم این میگه فستهلمن فعتزرمن استهلال در اینجا سبوت در زنبه نیست. خوب دقافت میکنیم. ولو لفظه استهله آمده. ولیزا اگر استهلال به معنای سبوت در زنبه بود و اسخاط بود این مطلقاً واجبه. بلغ با عملم یه الله. موجود شما به یک آقای مدیونی خودشم خبر نداره. خب است برای زنبه بکنید خب؟ اگر استهلال به حسب ظاهر به من نکته فنی یه اینقدر لطیفه که مرحوم شیخ با جنازتش نشدن، نشدند معتزله استهلال رو به کار بودن به معنای اعتذار نه به معنای ابراء ذمه چون اگر ابراء نکته ف... درست هست چون اگر معنای ابراء ذمه باشه علم وجده‌ای ندارم که من به شما مجنونم شما بدونید يا نديم بد به شما لذا میگه لذا تصفیحی داره که قیبت موجب عرش نیست که بریم اسخاطش بکنیم اون زرافت کار روشن شون شون این عبارت از نسبه شریع آمده این باید به تطمیه تصورات معتظره تفسیر بشه. فستحلمه لذا میگه استحلال یعنی اعتضام اگر استهلال شد اعتضام این محدود میشه به اونجایی که به شسیده باشه اگه نرسیده باشه چی رو اعتضام بکنیم؟ اون اشاره فتنه است. پس در اینجا داره که انک انختطفه بلغ المقتا فاستهل منه استهلال استهلال نگیریم. به دنه بلغه ولم یبلو چون به دنه بلغه ولم یبلو اگر به معنای براعت ذمه باشه بلوغ تاثیر نداره. شما وقتی مدیون کسی هست، بدون ندونه با دونه بشوید مالش روش بدید. اون ابراء ذمه بلوغ در شخصی نداره این استهلالی که بلوغ در شخصی داره دیدم. زرافت در ظرافت کار دقت کنید این استحلال اعتذاره یعنی فعتذرمن چون اعتذاره اگر دنقه اعتذار معنای نرسید خب چون یه اعتذار بکنید اگر لم یبلوغه به و این لم یبلوغه فاستغفر له لا اله دیگه البته این فاستغفر الله له رو در اه... کتاب تجرید نداره الان چرا مثلا فاستغفر الله بوده له توش نبوده چون فاستغفر الله این توبه بکن حالا من نمیدونم تو کتاب مسوا شریع الان نمیدونم حتی هم مسوا بهارن نوشته جلد 75 صفحه 258 نشد مراجعه بکنن به مستدرک مراجعه نکردم این اینو هم داره این حدیث در مستدرک آمده از مسوا شریع اگر فستخفر الله له باشه این زائد بر کلام معتذر است در کلام معتذر فستخفر الله له نیست فستخفر الله نه فستخفر الله لحب این حدیث راجع به قولیشون حدیث و فی سکونی این روایت سکونی درسته شیخ درست گفته لاکه این روایت سکونی الان از منفردات مرحوم کلینیه در تهذیب و استفسار و فقیه نیومده شدن چون از کردم تتبع ما نشود در که کلین تو اصول اورده غالبا شیخ نیاورده حتی اونجوریش مربوط به فقه میشه خیلی عجیبه معلوم میشه دو جنبه. اما بقیه فقه رو مفصل آورده روزه هم تا حالا ندیدیم ما از روزه بیاره برای شیخ طوسی ظاهرا فقط مثلا 80 درصد کافی الان در تزویب در تزویب بیشتر نباشه اما همش در فروع پنج فرو اصول نه. این دو در سکونی اراده سکونی در اصول کافی در باب اصوله این نوشته المربی فی فی باب ظلم این باب ظلم رو مروه می‌کنم تو باب به اصطلاح ایمان و کفر آورده این دو در کافی در باب ایمان و کفر جلد دوم اصول اما در وسایل که وسایل النقلی کرده وسایل در ابواب جهاد و نفس آورده مرحوم صاحب وسایل و این که کتاب الاشرایم داره که امزان توی ظلم نکنه برادرش اما این توی جهاد و نفس برده در زید عنوان باب وجود و رد دل مزاله من چند بار را کردم که اناوین عبواب و نگاه که این چون خیلی موثره در فهم اون جامعه کتاب بله عبد الله قال رسول روات سکنین هم گفتیم دیگه توی سخت و اسقاط داره اما سوابش اینه انجعفن قال انعبایی انعریه این متن کامل یعنی سند کامل که در روات سکونیست از باتون آخرش توی شده قال علیون تو بعضی رسول الله بعضی هم قال علیون کنم قال علیون موید قال قال رسول الله من ولم اهدن ففاتهو فلیستق فلی الله لح ف انهو کفارتون له. در کتاب کلیدین تو مرحوم استال اگر آن مثبال فقار نگاه بکنن اینجا رو در نیستن نوشتم به فیروزهایتی به دو روايته جعفریات دو تا روايته جعفریات، ایشون باینند دو تا روایت نهار کردن. از اون جعفریات نگردن توی حامشش هم از مسلمانگان نگردن. جعفریاد یه روایت داره دو تا نداره. و شاید استاد تصور کرده. جعفریاد یک روایت داره، لطفا این روايتهش رو مرهمه حاجی نوری در مستدق دوبار آورده. شاید خوش خویش لطفا دو روايتهش رو دو تا روایت هست یکی دو جا آورده مردم حاجی نوری در دو جا آورده چون مصارف وسایل دیگه اون یکی که بذاری که از وسایل بود یک جا در ذیل همون باب مزانم العباد آورده مثل کلایدی مثل وسائل مزل یک جا تو همون جهاد و نفس آورده یک بار یک بارم تو غیبت آورده تو هم غیبت همون که ما هستیم تو بحث غیبت آورده دو بار ایشان آورده لکن روایت یکی تو جعفریات یک جاست یکی روایت بیشتر نیست این یک نکته نکته دیگه این که در روایت تعجب از مرحوم حاجی نوری قدس الله سره چرا این کاری کرد تو کتاب یعنی توی کتاب جعفریات همین روایت از رسول الله هست با عنوان من ولم احدن ف غا بهره قامه توی نسخه کلینی هست ففاتهو لذا ففاتهو رو مرحوم سال و سال تو با رد مظالم آورده. کسی به کسی ظلم کرده بعد اون رفت راهی نداره حالا فوت کرد مثلا دیگه نمیتونه اون ظلم رو برگردن امام در این ترمین روح فیغمبر رفعیم منظلم اهدن ففاتهو روشن شد فلیستغفر الله له بگه الله هم له اگر این فله استغفر الله له باشه <تصفح> روشن شد <تصفح> اما مرحوم کتاب در کتاب جعفر یاد که ما اثر کردیم به زن قوی ما همون کتاب سکونی سایه توضیحاتش بودش در کتاب جعفر یان منزلم احدن همین سنه جعفران عبیان آوایی است منزلم احدن از موسی مجرد جعفر از امام کاظم انبیان آوای عظیم شو میشه منظرمه اهدن فعابهو این فعابهو رو تفسیر ظلمه یعنی ظلمش این بود که عیبشه برن کرد. در بعض از نسخ به نظرم چاپی یعنی قابن چاپ شده اما اونی که بوجوده فعابهو لذا مرموم صاحب مستدرک ازش قیبت هم فهمیده وفاقا لصاحب الوسائل توی بابر ادول مظالم امرده خودش هم به تنهایی در اینجا در باب غیبت آورده. روشن او شد؟ من ولما اهلا فابهو این گفته که این رو باید به وقت مربوط به ریبته. خب از کی ترجمه آورده؟ اگر مربوط به ریبت راجع به رد مظالم نیست، جا آوردی؟ اون آیه و سال که در رد مظالم آورده ففاتهو خونده. نسخه کافی فواتوه. کافی هم تو باب ظلم آورده. کاملا واضحه که اون فاتهوه. شما چرا دوبار بار اونم در هر دو بار فعاب هم که دیگه نمیشه که یا تو ظلم یا تو قیبتی دو با هم دیگه نمیزازه حالا به هر حال مرحوم صاحب مستدرک دو بار آورده استاد هم خیال فهمدن دو تا حدیث داره فیره